بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده یکتا عرض سلام و درود فراوان دارم خدمت شما بینندگان عزیز و عرجمند خدواند یکتا رو شاکریم که ما توفیق داد بعد از چند هفته غیبت و نقضیم شما بزرگان آران و نقضیم در خدمت شما عزیزان بتونیم یک بار دیگه و یکی دیگه از سری برنامه های آین سلامتی در خدمت شما موضوعی ان داشتیم الله که این یک ماه محرم که رو، روز و ازاداران واقعی حضرت سید شهده علیه السلام بوده باشید و انشاءالله که با ازاداری ها سوگواری که انجام دادید تسلای دلی شده باشید برای حضرت ولی هست الله تعالی فرج شریف و ایشون هم ازاداری ها و سوگواری های شما رو هم قبول کرده باشد من آسایی میکنم که به دو هفتهی نتونستیم فرمتتون باشیم نتونستیم برنامه رو خدمتتون تقدیم کنیم حالا با اینکه یه سری مسائل فنی و یه سری مشکلاتی که داشتیم ان بتونیم این برنامه و برنامه های بعد این نبودنمون رو خدمت شما بزرگواران جبران کنیم همینطوره که مستهفاری دو های آیینه تمام‌شویی دنبال می‌کنیم می‌دونید این ها سعی داره بر اساس آیات قرآنی کردیم و روایات ائمه اطهار علیهم از لحاظ طبی مشکلات و مسائل بیماری‌های جسمی و روحی ما رو بررسی کنه حالا و حالا راه حلایی و این سری دستور عمل و نسخه های هم برای شما حضوری ارائه بشه من قبل از هر چیز خودم خیلی برم تنشتو دارم حاجبا, از حاجبا. خیلی برم تنشتو دارم حاجبا خیلی برشون برم تنشتو دارم برم تنشتو دارم. دارم. دارم خدا شما با افیت و امنیت علیکم سلام و حمدالله خدمت دیگان شبکه جهانی و خدا همه ایشم را خوافیت امنیت در پناه خودش و نشمول دعای خیر و نولا سهراز زنان قرار بده خوب در خدمت شما و هستیم این چند وقتی که الان نبودین دو جلسه که خدمت شما و زاگهاران نبودین به پول ارتباطی که بایتون داشتیم 3 ازای 519 پل ارتباط که خدمت شما همیشه اعلام میشه و شما را دیگه هستید ما رو شرمنده کردید با پارامکاهایی که از قبل فقط این میبینید برای مامویت که نمیتونیم رو پاسخ خوب باشیم ایمیل شرکت کار بچهها آماده کردند حالا من یه لحظه ادارم ایمیل رو من بدند نشونت اطلاعات وعده من ایمیل رو میدن من این رسومات شما از قبل اعلام میکنم میتونید ایمیل بذارید مشکلات از سالاتون ما همین جا از آن رو میپرسیم و پاسخشو بهتون ارسام میکنم بهترین در حال برای رسیدن به جوابهای شما هست اما بلا تاییدی 3519 سر جاشت میتونی پرمکارتونی بفرستیم ما سر میکنیم افتاد برنمه ها و پرمکار رو بپرستیم امروز قبل از 20 سرقه تا یه رو براتود به برنمه رو به پرستش و پرمکار قبلی شما رو پردازیم چند تا پرمکار از خدمت محصر رو استاد میپرسم من پرستخاش رو میشنیم اینشالا که بکنم اون اصلی ها و اون مهم ها رو جدا کنم بعد میریم سراغ تلفن ها سر پانساد یازده 20 25 یک 6 سونه، 20 تا 25 هلو یک سیدر، و اون در برنامه شما یه دیگه به سمت تلفن و پاسخگوی تلفن شما میزارم میکنم من یک ساعت روی یک ساعت روی تحت به تلفن ها پاسخگوی آنطوری زیاد شما چهام نمیکنم خب من بدون مقداری time کنم فراتر سوال بپرسم من سراغ تخ ما رسید هفته 17 78 پرسیدم با عرض سلام برای شفاخی صورت چه کنم صورت خیلی سال بوده در ادامه درمانکشون گفتن که میدم ام اسید داره دکتر گفت حساب به من دو خوبتر شده ولی بعد از یک سال باز دوباره ترک کردم صورت و دوباره هم مشکل رو دارم این بزدوار عزیز با یه سیب بعد از هر قضا سویق تفاح یعنی سیب رسیده رمده شده بعد هر غذا بخوام اسید میدهتون خونسنگ و برای شفافیت چهره انار شیرین انار شیرین هیچ وقتم دستمال حوله امام دی به صورت نکشین لیف کیسه بعضی از این کار میکن این کارم نکن برای بحث به مهده هستیم که صورت اسید گیا گفتم صریق هم کمچ به هزم غذا میکنه هم اسید مهده خونسان مثل مشکل عصبی هم هستیم برای عصب با ایشون بهتر شده در اونا تو جیر غذاشون میتونن صبح عصب رقیق شده بزن درست. همراه با سامبولاتی قوی ترین داروی تقریت عصب خب صفت محصب 1177 صفت 9 گفتن که سلام خدا انشالله به شما خیلی دنیا درد من سه مشکل دارم یکی درد عادت ماهانه خیلی شدید سن من 46 ساله. از این سال خیلی داشتیم حاج ها که مشکل درد داشتن در این موضوع هر دارید یعیشی میعیدم که بگید استفاده کردم درد کمر هم دارم حالا من فمی کنم این چون اومده همین تیکیه تو داریستم چون مشترش بود من میخوندم با چند تا از باش. حضرت خانم ها و دخترانی که بالغه رشیده هستند یعنی عادت ماهیانه میشن اگر دارای کم خونی باشن تو کمری هستند و اگر همراه با کمخونی خونی و تپش قلب داشته باشن قاعدگی های دردناک دارن که از رحم تا گیجگاشون درد میگیره تا پشت کره چشم دوزا اول باید کمخونیشون رو درمان کرن قالبا کمخونیشون آرزی هست فقر دم دن آرزی به استولای پزشکی جدید آنمی در سه قسمه یکی آنمی فقر آهن آنمی فقر آهنت رو با اصل وقت شده صبحگاهی. و هفت عدد خورما بعد از نهار و یک لیوان آبسی به رسیده تازه بعد از شام تا وقت خواب شب آنمی فقر آهنشون خوب میشه دوست این دو قسم آنمی فقر ویتامین دوازده هست که آنمی کشنده و بدخیمه دردهای منتشره در جناق سینه هم می گیرن شبیه آنجین و صدری اینها کاری احساس خفهگی میکنن اینها هم باید حتما گوشت قرمز گوسفندی، ران یا زراع گستند هفته یک روز درمی هم یعنی سه نهار یک سیخ کباب بخوره یک سیخ کباب میتونه بانون بخوره میتونه به همراه یک لیوان دوغ شیرین کمچرد بدون گاز بخور. اینجا کمبود ویتامین B12 میشه چون گوشت قرمز و مهنا سرشار از ویتامین آ و ویتامین B12 است. دوست. یک بار کمخونی، کمخونی اسید فولیک. قبل حاملگی، بعد حاملگی، قبل قاعدگی، بعد قاعدگی این متخصص میفهمه. میتونی این فقر اسید فولیک رو با مصرف سبزی خرفه که بقلت زهرا بقلت اللینه بقلت المبارکه، اینو نوع سبزی خوردن روزی ماش تازه نبود خوش شدهش یه قاشق مرد بخوری یا اینکه چند برگ کاهو بدون سس با نهار بخوری چند برگم با شم بخوری یا اینکه الان فصل زمستان پاییز در این فصل زمستون حتی ها میاد لبو سرشار از همین اسید اسیدفولی که میتونه خامشه بخوره بعد از شسوسی و گنزه میتونه بخار پز بخوره میتونه آب پز بخوره اسیدفولی که بعدش هم تعمیمش پس کاهی این دردهای کمری و زیر دل زیر نافی در زنا و قاعدگی های دردناک مربوط میشه به کمخونی دست. و گایی مربوط به استراب دلهره میشه هیچ وقت نباید بدون صبحانه و بدون سحری سر کار بیرون یا کار منزل برم. برای تقویت قلبشون یه استکان تا یک لیوان آب به رسیده شب شبها هم اون لیوان آب سیده شد یه قشق, قشق پلخوری اصل توش هم بزنه دست. استره تپش قلبش خوب میشه اما این بزرگوار سه چیز براشون بده یکی قضای منده یکی هم قضاهای ترش مثل آبلیمو ترش گوجه سبز اینها دردشون بیشتر میشه تپششون هم بیشتر میشه و سوان ما منان های شیمیایی برای این افراد بده تا موازه بردن بخواهی درست من قلبی که افران بعدی رو دا است. حسن. حسن چون داری قاعدیگی دردناک سردرد های ناشی از قاعدیگی دردناک در به تخصصی بیماری های زنان دیسم نوره بانید. حالا اینجا قاعدیگی دردناک که سردرد ناشی از قاعدیگی دردناک میاره میتونه قطره های پیان بیستن قطره رو صبح بخوره قبل اینکه بره سرکار سردرد های قاعدیگی دردناکش هم خوب نشه خب من قبل نزید که سآل بعدین از خدمت آساده هرشمندان بپرسم ایمیز روستان من نخوندن مشحد at sign ولایاتیوی.com مشحد که آدرس سایتون هست www.ولایاتیوی.com میتونید اونجا مراجعه کنید مت، تصویر و صوت برنامه‌های های رو از اونجا بعد دیگر برمانه شواکر هم حاضر شو میتونید استفاده داشته خب صورت محصد 17 59, 82, برای ما من بیرون از خونه خیلی خوش رفت دارم اما خونه زودرنج و بچه هم رو میزنم و نفری میکنم دارم از این رفتار خودم دیوینا میشنم نمیتونم خودم رو کنترل کنم شما رو طور خدا راهنمایی نموی کنیم یعنی باید بیرون خوبه خونه که میان این ماشکل ده به خدمت این بیننده سلام روز میکنم میگم همیشه به یاد خدا باش خدا در بیرون منزدم هست. تو خونم هست ولی شما بزرگوار یه چیزی یادت میره و اون اینه در بیرون چون مردم قریبان هم یه ازشون خجالت میکشیم یه ازشون میترسی که میخوای عزت و احترام اجتماعیت از بین نفت خودتو خوش اخلاق میگیری اشکال ندارم آفره که خوش اخلاق ولی تو منزلم خدا هست تنها باشی خدا هست و خانه و خانواده و محلی که توش زندگی میکنی مسکنه محل آرامش محل و، محل لفوازی و محل فحاشی و محل قلتکگری و شرارت و دست بزن و زنجیر بزن و اردنگی بزن و نخون جلده بگیر و بزن نیست محل آرامش. وقتی تراجع به خدا کنی که ما فوق همه قدرت دیگه عبعت فراد میریزه قلدریت میریزه یعنی پیدا میکنی که ضعیفی خلق الانسان وعیفا وقتی حواست به خدا باشه خدا همه کارش روی حسابه روی علم و آیا یک زمان رو نمیاره پیهای میز محاکمه؟ بگه شما که شوهر هستی یا پدر هستی باید خیر رسانه به زن و بچه باشی نه شهر رسان آیا جواب دارم بدم؟ پس با ترجه به خدا و حساب روز قیامت آدم میتونه این عیب و نقصشو اصلاح کنه همیشه خوش اخلاق باشه چه داخل منزل چه خارج منزل همیشه رفتارهاش مثبت باشه چه داخل منزل چه خارج منزل همیشه احترام متقابل احترام افراد نگه بداره شخصیت افراد حفظ کنه افراد خوب نکنه استهزا نکنه عربده نکشه فحاشی نکنه میتونه همیشه ولی با توجه به خدا و حساب کتابه قیامه درست مرستیم حساب مسقم تا البته موی شنبه‌ها مستمر هستن که برنامه‌ای در سلامتی از اسدیو مشهد شرکتی جهانی ولایت تقدیم نزد حضور شما بزرگواران میشه یک شنبه ها بعد از ظهر همین ساعت برنامه‌ای رو دوستا منتظر می‌کنم به ساعت زنده به اسم قانون مهر این برنامه هم موضوع موجود خونه و خانواده و رفتارها در خانواده است با اون برنامه هم تماس بگیرید بزرگوار و دیگر وجدان که یه مشکلات این دستی دارن و این شکلی می‌تونن پنج بارنو تخصص بگیرم مشکلشون چیست؟ اغلب پسخ هزار زیادی هم بسیار پسخ کامل جامی است میتونن به اون عمل کنم من گفتم یه تلفن هم 11, 20, 25 چهل تا تا 25 یک سیزده 25 چهل یک میشه من یه بار سوال دیگه یه دیگه, دیگه میپرسم بعد سراغ تلفنی شما از از شروع کن تا آخر رو از من شروع تا آخر که معمولا خونه بردارم هست و دنبال پاسخ درفتن این هست منچون چند تا پرنانده این نظیدین دوست که بر چهار سه چهار ساله تا پشون ده ساله هستن و دارن رشد میکن دختر پسرشون بر د قدر پرداشون دوستان میقدر فرزندشون پرداندشون به بزرگ بلند رشیدی باشه و همیشهفهم به قولان شیرین مسئال این رو حل کن. یه راهکار دستول در اشت اینجا دو موضوع هست یکی موضوع... رشد مخچه و وزن گرفتن بچه اینجا اسید فولیک بچه نباید کاهش داشته باشه لذا مثلا اگر نوزادی یکنیم یا یکو گرم به دنیا آمده این فوقو تخصص نوزادم در بیست چهار ساعت یک بار یک چهارم قرص اسید فولیک رو به این نوزت ببین بعضی از قطره های ویتامین با دوز خیلی پایین مثلا مولتی ویتامین میده پنج قطره تو چه هستن که بچه وز بگیره و دوم رشد مخچه که بین دونیم کره مخ و بین بس مخا هست مخچه رشد مخچه مناسب باشه چرا؟ چون اگر رشد مخچه کم باشه بچه دوچار عقب ماندگی ذهنی میشه دست. پس گاهی وزن بچه یا رشد مخچه کمه توضیح خدمتشون شما دادم دارو گیاهیش رو هم از روایت مثل کاهو مثل خرفه الخصو به همچنین خرفه بقلت زهره بقلت لینه بقلت مبارکه گفتم درستم. از طب مکمل طب گیاهی قدیم و جدید هم گفتم که لبو بود در نوزادان یک قاشق چرخوری تو 24 ساعت کافیه اسید فولیکشون تعمیمش آب کاهو یا آب لبو یا آب خرفه کافی. اگر سنهای نوجوان و جوان هست چند برگی کهو با نهار چند برگی کهو باشم بدون سس بخورم نمیدونم مثلا تازه کنید لبوه نصف لبوه کافیه مثلا خرفه هست اندازه مشت خود بچه خرفه که سرجی خواده نه کافیه برای قدش چیزهایی که مانع رشد قد میشه چون رشد قد نوجوان جوان و جوان تا پایان سن بیستبین سالگیه چیزایی که مانع رشدش میشه اوسانسای شیمیاییه که هفتاد نوع 20 تا بیماری میاره نکشم هورمون رشد از هیپوفیز قدامی مغز ترشحش کم میشه گوی متوقف میشه وقتی یک مرتبه بچه چلنات کتوله فستولی باقی میمونه پس اوسانسای شیمیایی به اولادتون ندید چیزایی که رشد میاره تو جیره غذایی بچه باشه مثلا شیر اصال شیر خورما حلیم گوشت تو جیره قضاعی نوجوانان و جوانان عذیبت که بهترین سبحانه هست بگذارین هر جوزی یک کدوم از اینا خب خیلی معلوم میبین چرا به تلفن‌ها ها معلوم بودم در حال که پاسخ از آن من میشنون تلفان ها پر بود رادی یک و تلفن شما اینجا مشهد استی و ولایت در سا شما عزیزان هستیم؟ اولین تماس رو دوستستان ماند کرد آی احمدی از شاهین شهر تلفنشون رو دست می احمدی سلام شرایکه ولایت بپید سلام حالی که هستم. بهتر است آموزش دهیم. بهتر است آموزش دهیم. که من آلمان حدود 25 سال که از دولانیده. چیکار من جایی نشدم. 25 سال که از دولانیده. شما تا اینجا چیکار کردی؟ آلمان گذشتم. آلمان گذشتم. آلمان گذشتم. آلمان گذشتم. آلمان گذشتم. آلمان گذشتم. آلمان گذشتم. آلمان گذشتم. آلمان گذشتم. آلمان گذشتم. آلمان ای دولت آره حضرت اجازه الله رب العالمين شما تا شده غلط شده یار الله دست ام باز نمونه به مردو نیستم شاید تو دست به پا بگیرید نه تمام چه اینم دیگه آیا تمام مساجد این سینایتون نشد از برد دوست من سعی که از خیلی سازه سپاسگزارم سپاس دوارم از تاستونی شده که بله برد یه چند دقیقی یه چند تصالی دیگه تا برد چه ها تلیفون رو داریم آقا منون از خیلی سازه هست من متوجه از آقای آقای محمدی از چلچ تلفن این به جلیه های رو هم دست میکنه آی محمدی سلام شرکه جهانی بلایت بفرمید آی محمدی, آلو آی محمدی. آلو. ده، ده سلام سلام علای سلام سلام علیکم حال شما در هستم سلام باشید سلام ها اون هفته فرمودن که آب خیار بوتهی و گل گوش میکنم من در میکنم. آب خیار بوتهی آب کاشتی آب کاهو و آب کراث بله فرمودن که برای و گل و قدوس و افتیمو اینا رو گفتم که مصطفیمون رو می خواستم ببینم که مصطفیمون تو همه با همه یا نه مثلا فهمه کنه اول آقا رو کنیم بعدا اون گلسته و دو رو یا شرعی میگم برای مشکل مصطفیمون تو مولی که داشتیم دا آره داشت داشت من از هجوان میپستم خانم اصفحانی از تهرم چرا که شما دست کردم من مرسی حالا سوالی سلام جهانی بلور بفرمایید سلام علیکم سلامت باشین کنم سلام آقا هم سلام می سلامت باشی بخدم من دو سال مری هستم بله. خیلی دکترم یعنی رفتم حتی من خیلی دکتر رفتم بله ولی دکتر رو من دارم بله بله پریودام خیلی منظم یعنی خیلی منظمه هیچ عقب بذتای دارید که تو خطاب تن یا روانه دهانه‌ایام دارید یه قصه قصه چای خشک کنم یا مثلا مایه لگنی دارید می‌خوام ببینم این مثلا بدون آمد بسته میشه رفت بشه یا نه بله میشه تماس मामیامو چک کرد آخرین تماس خانم محمدی نیا از قراق آخرین تماس مون رو بگیریم بعد بریم سراغ پاسخ‌ها های محمدی میاد سلام شرکه جهانی دلویت بفهم سلام علیکم سلام شما بخیر مشکرم من سلام خل... علیکم سلام علیکم سلام علیکم بخیر خدمه حاجه سلام میکنم دلی بخواستم از ها در مورد تنگیه در ایچه قلب که بر اثر تماس تو دوران نوجوانی به وجود میاد سوال کنم منشکر از خوبتون خدا تایشی کنم چون کردید خب میگیرید که نظم برنامه و دوران تماس چهار پاس تماس در چهارت پاس رفت آقای احمدی از شانشان گفتم که صرف عزلانی از از از که دارین صبحها بهترین تون خوردن حلیم گندم گوشت، یعنی گوشت گوسفند با گندم که حلیم درست کنن این بهترین صابونته شام که خوردین قبل از خواب شب سیاهدانه با اثر در بین روز هم روغن بنفشهی معطر میخورید وقتم هم خواستی حمام برین آبیشن شیرازی سی گرم می جشونن. بعد آبشن می تو آب وان حمام آب وان حمام چل درجه بیست دقیقه دست و پا رو ماساج میدن تا او در اومدن خوش میکنن لباس جمع می پشن. تا از کارایی اندام حیاتی نیفته درست بحث اندام های حرکتی مثل دست و پا بله چیزهایی که حالشو بدتر میکنه قنده شیمیایی اسانسهای شیمیایی فستفودها و صنعتی و سخت کردنی تفتادنی حالشو بدتر میکنه و اگر قرسهایی که تو شیمیایی است مثل اکساز پام مثل کلورس پام دیاز پام چهار مدل پام دارین این سستی زانی میاره و شل شدن تاندونای پشت پشت پا میاره برای شما سمنه اصلا نباید بخوری اگر کسی به عنوان مسکن درد و این آداد برای برایشون سمنه تو سبزیجاتم، برات شیوید آده شیوید قرص شیوید آنتون، عرق شیوید خوش شده پودر شیوید براش سمنه شیوید نباید این چهارتهایی که براش باید بهت حجات ترک کنه چهار مدل قصه شیمیه و سر سرزیجات هم شیبید براش اون سه سماره به انجام بگن انشاءالله کمکم قدرت ازالت به کرام و فضل خدا برمی کن آقای محمدی رو از محمودی از کرج گفتن که هفته پیش برای آقا بله کسایی که سرطان دارن بیش از سی و پنج نوع سرطان تا شناسایی شده تو بحث انکولوجین سرطان شناسی داروی عمومیه بیش از سی و پنج نوع سرطان چهار چیز یکی آب خیار گلخونه ای درختی نه دوم آب کاسمی سوم آب کاهو چارم آب کرفس همه رو همون خام آب بگیرن با آب میگیری تازه تازه بخورن شیشه سه دروازه ظهر شیشه بعد از ظهر دروازه شب آب خیار آب کاسنی آب کاهو آب کرفس مخلوط نمی‌شود نه نه نه جهاز. تک تک خورید آ آب شیشه سه همین یه استکان آب خیار دو بار در روز، نه، اثر آبوکاستی دوازده ظهر و بعد از ظهر، بعد از ظهر آبوکاهو دوازده شب آبوکراست است. یک استکان، یک استکان، یک استکان یک تون. یک بار تو 24 ساعت از هر کدام. بنابراین کاسپی اگر آبوکاستی، مثلا عربی کاسپی رو استفاده کرد. عربیات، عراقیات همیشه 50 درصد خواست است داره. امه. اگر اصلش بشه بهتر، بله. خانواده رو کنار میاند باید باز سازگاری و اون مطلب دیگه که تومور دارن، گل یا کیست دارن. تومارشون مخصوصاً خوشخیه. اینجا توده گل استخودس. صد میخوری یا چای ساعت شیشونی در نصف استکان آبجوش بدم دوست نداری با عسل بخور. پودر افتیمو یه قاشق چایخوری میخوریم در نصف استکان آبجوش بدم یا با عسل ولی اول مغرب اینها با هم منافات نداره تداخل هم پیش نمیاد این دوتا تا کار خواهش میکنه هم تومورها رو کوچیک میکنه هم حجمشو کم میکنه، وزنش کم میکنه، تعدادش کم میکنه و سپس مات میکنه. درست. و هم یبوست مزمنش هم خوب میشه. این چهار تای دیگه هم کار خودشون میکنه. یعنی بحث این که رگها، باسی حتی رگهای لنفاوی. دستا فهمیدین؟ که ادمش خون مناسب باشه، هیچ جلاخته و توموری باقیمانده هیچ جای بدن ها. درست نه؟ خوب، خانم اصفهانی از تهران گفتن که دو ساله که مریض هم ماهانه دارن اون قاعدیشون منظم هست مشکل رهانه رحم داشتن و مایه لگنی گفتن حالا این با استفاده از دعوی ها میتونن حل کنن مشکلشون رو بشتن تجمع مایات اضافی بافتی در هر جای بدن باشه با گل دوست و پودر افتیمون خوش میشه همجوری که قبلا گفتم این یه مطلب تو بحث پلیپ مصرف آب عنار شیره مصرف گزمه که اگر درمان موضعی باشه با یه ابزاری که پزشکا بهتر میدونن اگر روی خود پلیپ ولو پلیپ بینی باشه یا با جای دیگه که این بزرگوار فرمود با ابزار خاصی که متخصصین دارن اگر روی خود پولیپ جوشانده گزنه یا آثاره گزنه بریزن کم کم پولیپ مات میشه همین این به عمل بله نداره خانم محمد این از عرق گفتن در مورد تنگی دریچه میترال قهر که در اصلا سرم خوردگی در دارم نجام خودم اختلالات دریچه یا تنگی دریچه میترال بهترین داروش برگ کلمه کلم سنگ نه کلمه بنفشم نه کلمه بروکلیم نه کلمه سبز گل کلمه نه کلم سبزه ها جو برگ برگ رنگاش هم مقصدسهی یه, یه،, یه داری چیزم بره حفر مانند بالای بعضی جهانش داره برگ برگ به هم داری این کلم برگای سبزی که مقصدسهی رنگاش از هر شب پنشت از این برگا رو بکنه کچیتر برگ هم به کلم روش میکنه بزرگه شی این داره به کشاه و از په هاش مقصد از اون کلم نخمه بله. ها بستگی داره به پهاش خاک زرائی و املاحش و نحوه آبیاریش که اگر قطعی باشه ها یا دارانی باشه بیشتر راش میکنه بله. تا به صورت جوری یا فلعین مهندسی کشاره از اینکه کرده میشونه از هر شب پنج تا از این برگرو رو توی یک قبلانه سه لیوان گوش آب میزه بذاره به جوشه با شعاله تا این بشه یک لیوان بس شعاله خاموش خامش می کنه ساعت که شد میزه یک لیوان یک قاشق پلوخوری اصله توش هم بزنه درسته؟ هر شب این فرزندشون اینو یوش بخوره بله مشکلات و اختلالات در های قلب خوب نشید درسته؟ اون آ... آبکه عفض اینجا جهاز ما میده دیگه؟ نه نه. نه چون که گرفتگی ارخ کرنر قلب نداره. درسته تنقیض گرفتگی رگ‌های شریانی به خونرسان به عزله قلب نداره. پس برای ایشون ترفن نه. آوی کلمه آثاری نصب سفارش چهار خب. 4 تا تلفن که کردم قلب به شماره تلفن‌های بعدی میتونید حتی من همین پیشنهاد به ذهن خودم رسید میتونید اثر به پول طعمکی ما 35910 سال رو ارسال کنید اون انتهای سال اڈروس ایمیل رو تو راحت بزنید ما پاسخور رو از طریق ایمیل براتون ارسال میکنیم یعنی اینکه از طریق ایمیل مشهاد از سان ولایت تی وی دات بهترین و راحت ترین راهه که شما میتونید به پاسخ پاسخاتون بدید اگر از طریق تلفن اگر از طریق تلگرام به پاسخ سوالتون نرسید این تنها راهیه که میتونید پاسخ سوالتون رو بدید صد در صد میگم این ویل به شما زحمت نمیدارم میشه سوالات تعتی دوستان اولی تماس بگیره آقای نصیری از شهریار این نسیری از شهریات همست کنید پلیفونشون رو, رو کنید بله, این بله. آی نسیری سلام شاهده جانه بلاید بفهم دیم سلام علیکم بزرگی آرشان بزرگی آرشان بفهم خانم من بیماری کرن در انتحاب روده بزرگ بله بعدش ایشون روزی شش ماهه است میخوره بله بعد هر میگیره میگیره مجوزتونتون بر دستش میاد بله خواستم بگم که یکی چیه مثلا میتونه بچه چقدر باشه نما ممنون میشم بله که شفا و خداوند بهشون سلامتی کامل بده تماستون بچا که میتونه دارید خانم چشمه از تهران تماس گرفتنم خانی چشم سلام شد که جهانی دلویت بله سلام خبتا نباشیم بله خدمت شما و آجقات بله یه شما خواهی شما بخمتن که من دو بعد در این برسم که سخشنای نارست آیا برای عملی شدن رایی هست نیست بعد به داره. تم دست بند. از دو گفته. من برنامه دنیا قرار دا... که مشکلی این کلی شهر تهران. امشب مسائل دندون تهرانی هستن. سلام بله. و سلام. علیکوان. سلام بفرمایید. که جانبوله. بله من خوروجو دارم. خانم کریمی. سلام سلام خدمت شما حاجاقا من دو تا سوال داشتن یکی اینکه من هر صدتون در قندش حدود که نظر حاجاقا در این مورد چیه؟ یکی هم که همسرم تاری مزمن دارن. میشه مثل حدود مثلا کیلو اضافه وزن دارن. من خواستم حاجاقا راهنمایی کنم که از طریقات هفته باید نتیجی کار بود روی انجام میدیم ده، مچکرم از تغییر مرمومی دوستان اوزادگاهات مثل اصلی یک دونه سآل و یک مشکل ما اینجا همه دونه سآل مشکلات درگیاره هم بپرسن ما یک دونه سآل پاسخور شما از ذهن هستیم ده، یه نفر از مشهد مقدس تماس گرفت گره خواهیم قرآن قرآنی از مشهد آموزه‌هایی سال‌هاش های که جهانی بله وای بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا پهلوانو شدید گرفتم یعنی شریع کنه دردش مداوم هست ولی دست راستش یعنی دردش هست یعنی خودیش هم تو هست خانم درد سمت چپ دالر من پارسال سونوگرافی از کلیهام دادم چون عفونت ادراری خیلی زیاد می‌گرفت بله بعدش من کلیه داشتم که بعد از بعد دو, دو ماه دوباره سونوگرافی کردم اوکی بود یعنی همین که سونوگرافی کردم مشکلی ندارم از نظر کلیه فرد همین که درد پهلو نگهدار ده په تاسو څنګه چات درې زیر دنداو یلا زیر خانو گالانی. خانو گالانی؟ دانه. دانه. زیر پایینتر سمت لګنه د از پشت از پشت از پشت درد بله نو از اوس دو, دو نفعه از تهران یا نفعه از مشهد یه شهریارم که اوشه تهرانی برسده شما خب آن از شهریار گفتم که خبت شما ارز کنم که همسرشون مشکل روده بزرگ دارن بینای روده بزرگ که دیگه ده پیچه درد و علاجه شما از هر منطقه که میتونن باردار بشن بالم. بالم. بالم. شما سلام از میکنم کلیت روده یا التحاد روده برای همسر شما قرصهای گیاهی سیلاکس و سنالکس سمه نباید بخوره چون برگ سنا التهاب روده کلیت روده میاره سخ کردنی تفتادنی براش خوب نیست غذاهای چرب و نیست براش خوب نیست تهدید این چیزا براش خوب نیست میوه ها برایش موز خود نیست. سمه نداره بخور درمانش دو چیز یکی اسرانه یا وسط روز یک انار شیرین با هستش به بخوره و این جداری که روی دونه ها هست به اسطلاح روایت حالی یادم نایمه و این پوستش توی روی دونه‌هاش بجو، با همونا. هم خود دونه امن، هم خستش، و هم پردهای نازک روی دونه‌های های دونه زیه. دونه. آفرین. اینا سه تاشو با هم خوب بجو و بعد بخور. شب هم بعد از شام تا وقت خواب یک سیبه رسیده. بهترینش سیب قرمز معطر لبنانیه. یا حالا سیب زرد گیرش اومد اینا. اینا با همون پوستش به که سمن چسب نداشته باشه اینو رنده کنه رنده ریز بعد بخوره اینه میگین سویق تفاه اونم میگیم رمان الحل کلیت رودش خود میشه بس. هیچ غبطی هم به حاملگی نداره یعنی مشکل حاملگی پیش نمیاد در کلیت روده املاحشونی مختصای کم میشه همه با تغذیه صحی بغییز مقضیه های به همراه تغذیه صحی چندبده املا خوشون هم خوب میشه خب اینو چشم از تهران گفتن که دکتر لطفعند تخدانشو نارسه تخخ ناراست دارن حالا گفتن چون یه حالی داره باردلشته بودن که مشکلی بله خانمی که تخطب دانش تخمک ناراست تولید میکنه و طول عمرش کوتاهه یا تخمک ساقطه هسته است اینجا چهار چیز براش سمه نباید بخوری یکی کافئین زیاد یعنی چای پررنگ چای مونده چای با اوسانس مثل چای احمد قهوه شکولات کاکائو نسکافه کافئین زیاد نباید بخوری دوم اوسانس شیمیایی نباید بخوری مثل پوفک نوشمک یخمک اسمارتین، سن مشابه گازدار آب شیمیایی سن نباید نباید بخوری سوم چربی با ترانس بالا نباید بخوری مثل پی دنبه خامه سرشیر که خامه رولت نارنجکی تعدی کل پاچه جگرسی تو نیوه مز موز نباید بخوری چهارم و قضاهای سنتی مثل کنسروها مثل سوسیز کالباس همبرگر، اینا رو ندارد بخور چون این چارتا تخبانان رو نارسان میکنه طول عمر تخمک ها رو میکنه بعد هنوز اسپرم شوهر نرسیده به انترالی لوله رحم پشت شیفور فالا تخمک عمرش تهم شده دوست. یا نارستایی در تخمک میشه تخمک فقط هسته میشه کاری دربه یا جهش یا میده دوست. در تخبانان نسبت به شوهر محترمشون که اضافه ضعف داره به حرکت اسپرم ضعیفه اگر دیابت داره سی دیگز. اون اون دیگز سی فا... آره. پس 6 کیلو اضافه وزن داره ایشون یکی دیگه هست اون دیابتی 6 کیلو وزن برای اینکه دیگاز وزنگ پس باشه نه اون فقط میشه که همین مشکل باشه برای سوال بزرگات تخصصی <تصف> دونی خب من یه اسخار هستم که همین دفاع کردم من اجازه سلام عرض خدمتتون در مورد اضافه وزن در مورد رژیم لاغری رژیم چاقی حاجی هم مفصل صحبت کردم و برنامه دو هفته‌ای ما کنید تا به علاوه دستگاه یه خیلی کامل جامعه رو اجرا کردن اینجا. فقط چون رو یک سال. دیابت دارند قندشون 25 اگر هر روز صبح شخص دیابتی نیم ساعت الی یک ساعت پیاده‌روی آرام در سطح مستوی در هوای آزاد داشته باشه، در مریضا دیده شده بین 10 تا 20 واحد قمد خونشون میاد اگر مریض دیابتی هر روز صبح و هر شب قبل خواب یک عدد بادام تلخ صبح یک عدد بادام تلخ شب قبل خواب به جور بخورم تو مریضا دیده شده ده تا پونزا واحد قمدش میاد درست. اگر وسط بادام تلخم رو امتونم با چیز دیگه بخورم با اصل مثالتون اصل باید دوش. دوش. خیلی از باز میخواهم خاصیتش کم نشه خود بایدونم چه برسه از بعضی چیزا درشون بیاد اما خیره درشون آیه قرآنه تحمل کنید مؤمنات. چون که برسه بعضی چیزا کم میشه بعضی چیزا اضافه میشه برسه که نه برسه اونی بگرمشون من خوب مطلب سبان وسط روزمانه نصف استکان عرق کلپوره این هم تو مریضا دیده شده ده تا 15 واحد قمدخونشونه میاره پاید پس این به این استقان تونه شخص از احسان برده برسونم برسونم برسونم احسان برده بازم مثلا اگر همیشه سال بدن داغ، کف دست پاتم چهار چیز رو قاطی کن در آب بخسن کسانی که دیابتی و مزاجشون جرم هم آفه آب آبو تمر تمرهندی آلوچه انناب بله خب. به نسبت مسابی نیم کیلو،, نیم کیلو نیم کیلو نیم کیلو نیم کیلو هر کدوم در دو کیلو آب بخسنن خوب که خسید حساشو جدا کنن در جدا جدا تحانه اصیاب مخلوط کن هم بزنن بعد چهار تاش قاتی کنن دوباره هم بزنن ایمیل دیابتی هر نیمروز و و هر صبح بشه خلاص دو بار داریدصاصم هر بار یک استکان از این مخلوط بخورم 15 واحد قندت می‌خواید و چون دیابت عوارض دیگه داره از جمله یبوست و مازمن از جمله قلزت خون این خودش باعث کوهنگ می‌کنه اخر. اون عوارض دیگه چینو خوب میشه اگر بیمار دیابتی ما سرد مزاج باشه یعنی همیشه سال بدنش یخ باشه کف دسته پاش هم یخ باشه اونجا سه عدد تخمه هندوانه حنزر اگر قندخونت زیر دیویسته اگر قندخونت بالای دیویسته پنج عدد تخمه هندوانه حنزر تا 24 چه یک بار میخوره اینها هم تونزه را حد قندشون نیاد پایین رو اون تقومه هنجنه که سمیه آره هم سمیه هم که گفتم که آسمیه هم نویلی هم نیاره وقتی که مسمومیت ناشی خوردن هنجن بشید آها یعنی بود هنجن رو نمید سه عدد تا پنج عدد همینجوری هم نمیخورن آسمیه یک گفتید خمیر نمیخورن اداره همین وقتی که میخوان بخورن خردش میکنن داخلش میذارن درست که تو مده باسیه این دو خوبی داره هم قندخون پایین میاره هم پانکراس لازم مده رو فعال میکنه بس. بسرشوه انسولین. بس. یه مطلب یادیداری خدمت بین و اندبان عزیز بگم در زمان شاه و در زمان جمهوری اسلامی چه در داخل کشور چه در خارج کشور دیدم بعضی از دکتران بیماران دیابتی رو از خوردن نیوجات منع میکنه این یک اشتباه مشهوره اگر نه از نظر تخصصی حاجقا کل نیوه سه قسمه گای قندشون بسیار کمه مثل توت فرنگی گای قندشون متوسطه مثل مرکبات نمانند. <تصفح> قای قندشون زیاده مثل خورما مثل میوه موز که میوه موز هم قندش است هم چردش ما در دیابتی ها میگیم که توت فرنگی اشکال نداره قندش خیلی کم یه مش بخوره تو بیس چه ها سخت هیچ اشکال ندر و در بعضی نیوه های دیگه یه ماده خاصی هست به نام سوربیتل باسی بنیس سوربیتول جالب اینه که این ماده هفتاد درصدش در بدن میسوزه و ایجاد کالری و انرژی میکنه و جالبتر اینه که در این نیوه ها مثل آلو آلوبخارا مثل هویج زرد ایرانی زردک حبیج بیادونه اینا هم میگن درستو. عربا میگن جزر، جزر. پس یکی چی شد عمو جان؟ آلو بخارا. بله. به چی حبیج زرد، جزر. سوم میوه گیلاست، گیلاست. چهارم همین سیب درختیه رسیرس. در این چهار نیوه سربیتون هست. دیابتی که مصرف کنه براش مذار نیست مولای مولای مولای مولا که گردم دم که گشتم دارم موسی بیازدی نبم نشیندم برم در این دم های آفتاب دیگم میرم ز پیش شما يا هيدابا بسو يا هيدابا علي هبه جنة قصيم النار والجنة قصير المصطفى حقا إمام الإنس والجنة علي هبه جنة وسيم النار والجنة وسيم المصطفى حقا إمام الإنس والجن إمام الإنس والجنة يعني ابن أبي طالب يا ابن الأولي يا حجاب الله والذ بالغدي بل أذني يعلي ابن أبي طالب يا من الأولي يحيى الله والباب القديم بل أنت أنت الغروة المتقى لن تفصني أنت باب الله من يأتيك منه يصني أنت باب الله من يأتيك منه يصني قل هنا أشكيتي ما لأليم این رخ داد، خونه نخوند بی چراغ بیچراغ بر از روزی که پاتم پردازد از بیت علی، حسن نی نوزین امیدشون به مردادا، مرا امیر مولا امام المتقین، مولا امیرالمومنین مولا امام منتقی دست هر بنده که بر دامن مولا برسه ردپای آنی شب شد برسه این شباز فرد يدل عنها بفار یعظتونی ضمجار علي بفار یعظت دل مادر سهب ابي انت و امی یا امیر المؤمنین بی في وبأهلي وبمالي وبناتي والبنينا وقد ذكى النفس مني يا إمام المتاقين وقد ذكى النفس مني يا إمام <ماؤسطور> اینم این قصه‌ی که این خانم قربانی از مشا گفتن از ماه رمضان درد خیلی شدید دارن درد سمت قسمت بالا پشت درد دارن ظاهرا که کلیشمی نیست که شل حالا از هنوز درد داره هر شخصی های سینه شو در نظر بگیره آخرین های سینه از طرف پشت به طرف ستون فقرات اینجا جای دو تا کلیه هاست درد میگیره به خاطر شن و سنگ کلیه یکی از تو کالیس ها میاد میفته تو لگنچه که قبل از حالبه درد بسیار شدید به استقرار و نفرولوژی میگن از درد زایمان بدداره یه بار دیگه نه این شن و سنگ رد شد تو خود کالیسه مثل کسیه که اینجاشونو گرفته مم. اگر حالا یه چیزی بخورن که رسود زیاده مثلا اسفناج بخورن یا ماست چکیده بخورن یا کشک قلیز بخورن پنیدهگه نمیشه گرفتگی اینها بیشتر میشه دردشون بیشتر میشه. خود شخص میفهمه توی پردومه حالا گرفت چرا بزر اینها براشون خوب نیست تا وقتی که شن و سنگ درد ها نشده که خدمت این بزرگوار بگم حالا که سنگرافی گرفتم این متخصص بزرگوارم که اکسشون دیده سنگرافیشون رو دیده شن نداره سنگ کلیه هم نداره درد دردهای این ناحیه مربوط به تب کلیه است گلنج کلیه تب گرده ستا اسبر گرده اینجا باید تو جیرهی غذاییشون هاجقا دو چیز بگذره یکی صبحها به جای چای دو استکان آب جوش که در او نچه قاشق چایخوری پودر زعفران و یک قاشق پلوخوری پودر شاخ نبات باشه چرا چون کسایی که تب کلیه دارنآ اگه عرق بدنش خوش بشه درد میگیره. اگه از همون استخ تا بیام یه کم وقت بخونم درد, درد میگیره. چون دو جای بدن سری سرما میخوره. یکی سینوسای فوقانی، یکی دکتکولیا سری سرما میخوره. خب مثلا هددان چشمی رو سری بدنن یه کم رو با یه شادی که چون هوا سرد خشته. و خشکه. از شهر تهران هم که داره برکن چیزانه. پس در هوای سرد و خشک یا سرد حتما هم سینیس های فرقانی بدن دن و هم تردیارو چون ترد کلی عرضه حالا باید کلیارو گرم کنیم. یکی از طب گیاهی طب مکمل گفتن که این بزرگوهای فرمود بگو بله. پس پودر زعفران نکه قاشق چرخوریم میریزن تو استکان، یک قاشق پلو خوری پودر شاخ بگو آب جوش روش میرزم هم میزنه. بله. سبحانه از این دو استکان بخوره چای نخور وسط روز یا اسرانه یا شب هر وقت میلش کشید دوست. آب حویج زرد حویج بیارونی حویج وحشی این اسمه مختلفش به استقام نشد زردک، زردک یک لیوان آب زردک بخوره تو روایات شیعه داره میگه یسخ خمل کلایی کلیاره گارنکت دست. دشمن مشکلی نهستن یارم. بله مشکلی نه. دیگه هم داره. به اسید کالریجی که نده ترکی میشه. دو. میره چشم زیاد میشه دو. چون ویتامین آیا زیاد بیتایید میکنه خب خوب فرمانده ها تو تلفن. شما اوزه گواران قبلش من دو روز هست مشهد ما با شما بزرگ عوران از تارنمای ریانه ای نکنه اسم جدیدش گفته میشه خب تواسه بعدی به من بگیدار سرکار خانی از محاوند که خط تلفن به داره کنید بله سرکار خانه که جهانی و بلایت سلام <تصفيق> <بس یا بر. تصفيق> سلامت بخیر منتون بپهمت سلامت بخیر منتون تنمه از ما خدمت شما های آقا نباشید من پار سال زرمانه زیگرد بشتم دانه امسال بار بارگرم بله بعد کانه تن وقت زیاد من میسم سر گاز تنمه هم گرد گیره. قسمت سانت زیر شیطنم هم درد میگیره. مخصم احاده با چه کاری باید کنم که دوباره باید زرمان زیگرد یا خطب ممتنم ممتنم خوش بر. خوش بر. خوش بر. بله. بله، متشکرم. خواهش شهر اصفهان تماس گرفتن، خطشون رو دست سلام، صدای خانم چاکی جهانی می‌بلد بفرمایید. سلام من, من همسرم دو تا به شده. بعد میخواهم ببینم که برای این افضایی شدیدشون چی کار میتونم بکنم و یکی چشم هموز بخیه بخی بخی عمل داخل چشمشون بخیه بره هموز در در در بینه بیشترشون میخواهم بله بلا قدرز بینایی هر دو چشم بیشتر بسه ممنون متاکرم هموزتون ممنون خریش خریش خریش خریدون باشم خب سهکار خانم قولمی از شهر رشت. تماثی گرفتند خطشون رو بحث کنید سلام علیکم سلام علیکم فضلی شو چای کی ڈبہ لے جاؤ السلامت باشید داره بله 700 که بچه بالا بره بله بله خیلی ممنونم تماس اینکه بگید سالم تبعید نمی‌گی پیش کرکس اوئے از چنا ما شونه و نازو دیدین دو هفته تواصل اینطور پلیسان هم از وقت نمی پاسخ خوبی آیت الله به سلام شاید جوانان ولایت بفرمایید. البته ما خاطر رسید. شورای جوانان به بفرمایید. حالا و ازجان بذارید که داشتم. بله. ما آشپزی رو اولم ریخته و جوش بذارید. به بده سرخه. بله. بخارم بپرسن که چه این لایک بره که از بین میره و شفای کامل دست پیدا محیطه هاست به آخر خب ما تمام تماس گرفتیم شو در سری بعد دفعه بعد تلفون های خب خانم نهاباً که پارسال زیمان رو جد داشتن یک سال گذشته و سال بعد چند وقتیه که صحبا که برمیستان درد کمار دارم و زیر شکرشون درد گیره سمترست نگاهنم که خدایی نکرده این فردازش نمیده چند چیز برای شما سمه و هم خوراکی بده گستتون نشمانم یاد داشت دارچین زعفران کاهو زیاد خوردن با قلعه وقل وقلی حالا اصیل این بهزچیم. این هم زیاد خودن این چارتا در خوراکیا شما نخورید بهتر بهترطب به صحفرن در چین کاهو و بللا اینها رو زیاد نخورین فعلا احتیاط کنید اصلا نخورید چون اینها سخت جنین میاد مواد سفید کننده مثل تیزاد وای تکس اما اماننده اینها یا حاله هایی میزنن از چادهشون از چیزایی دیگه و اینا کار نکنید مخصوصا در که بسته فعلا اصلا کار نکنه تا چهار ماهگی بچه تمامش چون در ایام دو و سبا ماهگی سخت جنین احتمالش زیاده تخصصي زنان و زایمان چه چی چیزایی بخورید که بچه جا نشه و محکم دندوناش به جدار رحم دست بشه اول سبحانه بهترینش حلیم گندم گوشت تو روایتش اینکه کمرم واخت، آره این مواد داشت مزارت مدی مواد به دهو خانم قدیمی از رشت که هفت ماه دارم ماشین کم بود، برای ایشون هم خوبه. که رشت بچهش کم بود، جنین رشتش کم بود. حلیم گوش سودونه وسط روز یه استکان آب به قاشق عسل توش هم بزن بخور. ناهار همیشه هرچی میخوری یک سیخ کردم همرایش بخور با نینه سبوسته رو ها نه چاکر لغمه اگر باشی بهتره یعنی خود گوشت رو بره آه خود, خود, خود گوشت رو بره, بره. با غیر مستقیم حراره بله بله شعله هم تون نباشه سطحش نسوزه نینه پختم نباشه نقص پخ باشه همه با شعله آروم میتونم بخار پس کنم میخوام پیشم ب ما می این وقتی که پلاسماشون کمه اینها یکی هم شبها قبل از خواب سیاه دوه با اثر پس این چهار تا تو جیره غذاییتون باشه ح گمدان گوش هم خونساز هم ط بدن بالا می هم دردهای کمری زیر دلی خود میشه این آب به به برگ انگور پیشگیری و درمان میکنه نشری خونریزیهای داخلی ها. دیگه محتاج به قرص شیمیایی ترانسیت و مانند اینها نمیشه بسمان. اون سومی که ازا گفتیم به خاطر اینکه ویتامین A و ویتامین B12 تو گوشت قرمز زیاده بهترینش گوشت قرمز گسفندی، ران گسفندی یا زراع گوسفند. این سوامی که گفتیم هم کنرشون محکم بشه فوائد دیگه هم داره که تا هفتاد خاصیت روایات اومده علم جدید تا 400 نوع بیماری رو با سیاهدونه درمان کنم از جمله سوال این بزاره جمعه قال دیگه من سوال بعدی هستم بیان حل کنیم که ان شاء الله پنجازتون جواب تست بشه یکم برنامه برادر اینجا سیو مشهدر پخش برنامه مهر من بودیم که یک برنامه هست برای از ساعت هفت نیم تا 8 6 پس تا 9 پس تلفن های بزرگاوران بشه یه وقتی در هفته یه ساعتی که من اگر هر شنبه بذارید چون که یک شنبه ما که روزو میگیریم میریم نماز ظهر از هم رو میبرن یک جلسه باز اونجا صبحتون میشه باز از اونجا میبرن یک جای دیگه خیلی خاص چون مغرب شنده بعده بعده شنده نیم خوبه. بعد از مغرب میاد گفت شنبه خوبه بعد. پس روزهای ولنته فقط بعد از ظهر هر هفته که ما هستیم از ساعت نیم تا ساعت نه خوبه روز 7:30 شب تا یک. داخل اونجا هم تماس بگیره ساروتون از زبان خود از تو استاد بشنوید پاسخ شما ادم هم از همسرشون گفته بودن که قانونی تماس همسرشون جف چکماشون رو خوشبختا نه پیوند موفق بشه باشن بعد الان چشم هنوز بسته برای اینکه بینایی چشم افسرایش کنه فکر یکیش حلوی سیاست, آخم. سیاست. آخم. روزی دو عدد سیاه بخوره یا یک قاشق پودرشه و اصل دور شیرین, شیرین، چیزایی که آسیب به چشم میزنه نور شدید نگاه مستقیم مستمر استون، آمونیاک آرسنیک اینا رو باید باااحت باشه در معرض نور شدید و بخارات مسموم قرار نگیره یکی دیگه از چیزایی که تقریات نمی کنه تو 24 ساعت 80 میلی گرم تا 120 میلی گرم سیاه اجیله یا توت سیاه اروپایی یا مشهدی هم میگن توت مجنون مصرف کنه هم نور چش زیاد میشه هم آب مروارید قاتلک خوب میشه هم گلوکوم و اپسیاکو خوب میشه کمک به برگشت بیماری این بزرگوار میکنه اما هیچگاه چه چشمای مردم که عمل نکردن چه این بزرگوهای که چشمش عمل کرده هیچگاه چشمو نباید محکم فشار دار و از یه آده رو گرد محکم هم خود فشار دارم من دیدم آره. چشمشون رو میچه بینم چشمو محکم فشار دار ترازش به هم میخوره قوز چشمی میگیرن درسته من مشکلاتی بشهد دومن که باید مواضب بشن بلاخص این بزرگوار همیشه اگر میخواد دست به چشمش بکشه اینا دستش به و با چیزی خشک نکنه و باشه هم میدنی بشوره بعد به چشمش بکشه مثلا میخواد بخارنه آروم آروم باید گوشهاشو تمیز کنه دست نشسته به چشم نزنی که افونت باکتریایی و ماننده او پیش نه یا. خب آنچه خانوم غلامی ندرشت با میکنم بخشی هست خب رو دارم گرفتن که حرف ماهی بار دارن باشه کم بار دارن این بزرگواری که حامله هست چه خانوم قبلی چه این خانوم جدید و بزرگواری دیگه باید بگم یه سری چیزها براتون خیلی بده مثلا کفش پاشنه بلن بسیار دارد برد پیادروی های خسته کننده و یا طولانی کوه نه دی سخت نردین ورزش های سنگین کششی سخت مثل ژیمناستیک تصافهم کششی سخت ندارشون خود یعنی که تو خونه خودت این خیلی ابداله کنه بدی ابداله کمد آشپزخونه حاجی واقعا اون نمیرسه قبل حالا ببین ما چه کار بدن چه دست بکشه یه چیز وارد بدن بعد چه جا کنه استرس شدید نگرانی مستمر روی شدید استراب شدید حمقان شديد اینها بچه رو جاكن ميکنه اول لکبینی میشن بعد بچه سفت میشه اينها که براتون ضرر داره ترک کنید بعد دیگه مثل شوهره در 24 ساعت سه قضا غذا نخور زن حامله ای که خودش سوء تغذیه داره یا بچهش کم وزنه یا از کم خونی رنج می حسنو اش که قبلا توضیح دادم هاجره اینجا زن حامله علی اینکه که با شوهرش سه بعد قضا میخوره شش وعده رز مقازی بخوره مثلا صبحونه با شوهرش خورد بهترینش حلیم گندم گوش بود حالا پس کردن یه ساعت گذشت یه لیوان شیر عسل خورد فکر کن هر دو ساعت بعد یه لیوان بعد یکی دو ساعت گذشت یه مش مغز بادوم شیرین خام به همراه مغز بادام هندی سندوق خام، خام باشه. بده اگر یوبسد نداره، پسته درختی هم باشه. اگر داره نخوره. همین سه تا. یزمقازی کامل. مثلا یکی دو ساعت گذشت، یک گلابی آخر. یکی دو ساعت گذشت، یک استکان آب انار شیرین تازه بخوره یکی دو ساعت گذشت، یک استکان آب سیب تازه بخوره. اگر یوبسد نداره، یه دونه سیب درختی بخوره. منظورم اینه که بینسته وعده قضایی خاصی که داره شش وعده هم ریزم قضایی اینجا بچه هم وزن قشنگ مادر هم خود میشه ان شاءالله هم خوب میشه دیگه نمی‌خواد هیچ قرص شیمیایی بخورن آخر سوال این بخش رو ای از چرنال گفتم که خانمشون دهان آشپزی رو تصادفاً واقعا داغ می‌ریزه در بخش از بدنشون یه زل به این اینجا ح همون وقت سریع باید جاشو خنک میکردن چیزی نمی مالیدم جاشو خونک میکنن مثلا زیر میگفت. بعدش حاج ها باید پیاره سیب زمینی یا همین خنیر زندان کار خیلی رو تارک میکرد وقتی میخ سر نظره چون باید تاقدره رو بعد تکنن حاج ها لک بیشتر میکن. حالا اینشاالله که خوب بشه دو یکی هر روز یک قاشق پلو خوری خام از میوه خشک بار. خود تفتدش خیلی تحقیقی می‌کنه چون من می‌بینم پرستن همون تو اکثر جهان کم هست تو اکثر کالاهای تاجگی. تو خشکباره. از فروش، از جی فروش. بله خیلی تحقیقی می‌کنه. بله بله. چون خام براش اونه. آره معمولا میاد. چون تفته دیگه‌اش فلجیه. من از قصد میگم چون اینا حضرت خانیم خب برای اینکه کارسینوم های سینه غرم های سینه سرطان های پستان تومورای خوشخین یا بخینه سینه نگیرند، اینها سخ کردنی تفتادنی بودادنی پنیر منده آجیل منده نان منده نخورند. درصد اینها در, این در خانما بیشتر از مردان پسرانه من این رو تذکر بدم دوستان پس چهل روز خام روزی قاشق پلو نیجر می دوم این که توی خاطیا انار شیرین اگر بتونه هر روز یک لیوان بخوره بعضی از مهندسین صنایع غذایی تو کتاب انار درمانیشون میگن تا دو هم میتونه بخوره آب شرطی که نراحتی های میده نداشته حالا اندازه خودم یه استکان آب اناره شیری این خوراکی کافی حالا از حیث پوماد روغن ماهی مرو که ما در زمان جب هم حاضرم از کشور آلمان یه پومادهای خاصی هلال احمد جمهوری اسلامی ایران وارد میکرد درسته برد تا از سوختگی های ناشی از مشتقات نفر بیای روغن درسته به نام انگانتول زیکفرید حالا خودمون روغن ماهی مرو مرو ما آلمانیش هم همینه از تا طریقه با... از اطولیه و اگر داشته باشن توش وازلین نباشه از کودی پرد اگر حتی این که از ماهی طریقه هم روغن درسته باشن روغن در ماهی مرو بخرن تصد یا این چه پماده المانیش هست زرد رنگه انگانتول زکفرید انگانتول یه مثال آسان بزنم مثلا پس کنم مادری نوزادش که به دنیا آمده یا بزرگتر شده پس کنم چار روز 6 روز هفت روز دستشی بزرگش کار نمی میگیم میتونی برید مثلا شربت آلمانی انجیر بخری یه قاشق چای خوری صبح یا شب بدیم نه خودت شربت انجیر یا مربای انجیر با قند درست کنید انجیر ملینه با قند درست کنید مصابه حالا بدون لپاش و بدون دوناش یه قاشق چای خوری از این مایه صبح بده یه قاشق چای خوری شب بده درست بشه سه چهار را که دیدم میده بچی کار میکنم حالا اینجا روغن ماهی مروع خودشون میتونم تاییه کنم خب خیلی ممنون آجا چون زمان اونم کمسته به خط حتما باید بگیریم سه خط رو بگیریم بعد دیگه اونسای برنامه ها میرسیم سرکان خانم پتر میده از تهران پشت خط هستن خط رو بگه یا آقا رو در ما خانم از اینجا فلاحان چه هایی که سلام،, سلام. سلامتون سلامت. به خیلی مزجرم، معنی هستم از سهران مزجرم شدم, مزجرم شدم. مزجرم که من پنج سال سن دارم و سه سال سر هم خار پاشنه میگیرم دو سال کامل کورتر زدم پیدارم در اومد الان دو ماه مجد در سال سومه. خار پاشنه شدید که کف کام سمتی چر. پاشه ورم کرده و همینطور هم به آهانی فلزی که خوب بشه درمانش نمیشه بس. و میخوام دیگه کانتور نذارم چون خیلی زیاده و شاید عوارض داشته باشه گفتم اگه کارش هست اجازه توضیحی بسوام بدن اینکه چطوریه که بتونم میذوق کنم درمان و, و در ضمن اگه روت کنن به این این شایعات چیکار کرد که کمهش دارید؟ دکتر وقتتون رو نمیگیره، علامتتون. هم ممنون. در, در مورد که صحبت شده قبلا در مورد حتما من سالو خانم رضایی از هز... بنده خدا قر اختلاس می‌خواد کم بشه. همین از راهی خانم رضایی از تماس گرفتن، خطشون رو دست سلام سلام بفهمید سلام سلامات سلام عرض می‌کنم سلامی داشتم از شما می‌فهمید می‌شنوید بله بله سر مال خودم میخوان خواهش می‌کنم بفهم بله سال سن داشت بعد سوال اول بچه نمیخواستن بعد اقدام کرد کردن شدن که بچه نمیشن نمی‌شن استرا که تو مدرسه تو فعال نیست به سبب از آمادشون کار خریدار در نتیجه نداره از آخرشون چی شدند تخمگذاری انجام دادن. اونم نتیجه نداده تازه دکترم متوجه شدن کیشی گوششی بیششون فعال. دو ما 5 ماه از این موقعیت میگذاره استفاده میکنیم ما نتیجه ای نداده. میخوام سوال کنم ببینم اجازه میگه آیا میتونه؟ همسایشون مشکل نداره. همسایشون که مشکل نداره. خوبشون خودشون بیشتر آقایان داره سالو و میشه. نه چون آخرین خط رو بحث میکنیم. از خواهی میکنم. از کسی که پشت خطم من رو براش از خواهی میکنم. هفته بعد در میگم. آقای عکشامی چیست؟ کنم از عراق. آخرین خط آقای عکشامی. در خدمتشون هستیم. آقای عکشامی سلام شاید که جهانی ملایم به هم سلام علیکم عليكم السلام. به که سلام میکنیم همینطوری شما موجود محترم آقای مزلومی هم مچاکرم بله، در خصوص خانوم داشتن که سنگ با سایز سمیلی در که از کالیس های میانی کلیه راست مشهود شده در این مورد توضیح بزنده میدن اکل دو از پایین ممنون میشن مچاکرم از تامنشون انشالله که سنگیشون این شاید ممنون خرش میکنم مچاکرم من واقعا شرمنده‌ام که تلفن رو پاسو کنیم، زمان نمونن. خیلی هاجر کنیم، تقریبا 3:00، سه تا نمون دریم، 3 تا سال بزرگ خانم رضایی از تهران ساله، پنجه ساله هستن، سه سالی که پشت، پاشون 60 اشته، برن و زیرن که گفتن نذارن، حالا که دست داریم. اصلاً داروهای کورتون دارونیست در تخصصی داروی شیمیایی دارونماست. لجم سفراوی میاره پوکی استخوان بیماری استرپروز میاره اصلا اون دارو خار پاشت پا برگ انجیر یا خود انجیر که از درخ می یه شیرابه سفید میده. ده بذارو پاشنه پا این خار پاشت پا رو می ولی به مدت یک هفته دیگه آب و خاک نباید بخوره از اون قوی تر و بهتر سرکه طبیعی سیبه سرکه طبیعی سیب اینجا هر شب پنبه رو آقشته میکنی به این سرکه طبیعی سیب میزاری روی خار پشنه پا با یه مشمایی بدن تا صبح کم کم خار پشنه پا رو حل میکنه و این حفره رو ترمین میکنه ردش هم نمیمونه بزنبن. چون ترمین کننده قوی پوسته بزنبن. سال 12 این ما هم دیگه سر کشی تمام شد در حال ادامه میدید تخار خالص پختن تا مح مشون. مح مشون. خانم میشه خاله رو به جانب خواهر سال 14 سال سال اول فرزند نمیخواستم بعد سال که حالا بار بار نشودن پندم بعد تخمک گذاری کردن اون هم جواب ندادن خب وقتی که قبه شیدگیشون ضعیف اینجا باید هرمون استروجن زن رو بالا ببریم هورمون زنانش رو بالا ببریم هر روز تو جیره قضاییت هفت برگ کاسنی نبود یه قشو مرب بخوری پودر کاسنی نبود یه استکان عرق کاسنی میخوری هر روز از این این که رو فعال کنیم ورم تختان نداشته باشه کیست تختان نداشته باشه و تخمک رسیدگیش کامل باشه سه چیز رو باید انجام یک حجامت خاص شنبه از دو طرف ران فراسط حجام زن دو شنبه از بالاترش از دو طرف ران از وسط مایچه از دفا پنشنبه از مهره آخر کمری که با استخون لگم رسله یک بار این حجامت خاصو به ترسط حجام زن انجامه دوم حجم باید بادکش گرم اونجایی که ورم تختان هم هست ها. یعنی نافشو در نظر بگیره و دو طرف کشاله های پا کپاتو تا, تا میکن یک شکل اینطوری تقریبا میشه دوست. از زیر ناف به پایین دو قسمت دو تا بادکش گرم کشاله راست به تو بادکشگه هم کشاله چپه به تو بادکشگه هم تو یک راستا باشه بادکشگه هم یعنی یه پنده رو آغشته به الکول دلستان. میکنیم الکول اپیلیکی نه بعد این رو برشنش میکنیم تو یک لیوان خالی میگه یه خلا نسبی میشه تا بذاره خورو اونا بردن هم متخصصای این کار بردن حجامای زن و متخصصای این کار در این شش نقطه که یک بار، در این مواقع تا چند بارم تکرار میشه تکرش. همین کافیه پس دو روش شد سه چیز یکی هر روز مصرف کاس دوم حجامت خاص برسن. یک بار با خوش گرم هم یک تا سخست بعد خب. چیزایی که تختانها رو بلتحب میکنه ورم میاره کیست میاره کم کار میکنه نباید بخوریم اسانسای شیمیایی ادنیوای شیمیایی مثل که های از افترین کافین آره زیاد چربی آره زیاد فسودا اون رو کلی این مثلاً به کل سلامتی ها کمک به کل سلامت جامعه کمک آیا از عرب گفتن همسرشون یک سنگی سایز سنگی در کلوی سمسر راستشون نارن و حال برای درشتر فقط یه تمام افرادی که دوست دارم هیچ وقت شن کلیه و سنگ کلیه نگیرن تو 24 ساعت 8 لیوان نوشیدنی خوب بخورن یعنی 4 لیوان آب آشامیدنی سالم 4 لیوان آبجوش ولرم بخورن حال اگر مبتلا شدن به شن یا سنگ کلیه میتونه قطعه سنگ کل از داروخونه بخره یا وسانی تناوبی بخوره از سی قطره در یک لیوان آب تا 6 قطره روزی 5 تا 5 تا اضافه کنه به 6 کلوسیت 5 تا 5 تا کم کنه. میتونی نه شباس یه قاشق مرب بخوری سیاه دونه بخوری. در روز یک بار جوشانده یه یهش هستی خوررم میزن یه غری کوچیکا ایستقیق بگیشا؟ یه استکان، جوشانده آب هسته آه. خورما هم سنگای کلیه خود میکنه دست. هم سنگ های مستنه شده تو چیزی نیست عمو خیلی متکم آن هم فصل هم هست ام. هده ناراتی نگوه میتونه تروپسی هم بخواه خیلطا خوب نه با جم رو سانی ما خدا و اگه اللهم صل على محمد و محمد معجن فرجم خدای همه انسانهای خوب شریف را بالاخص مسلمانان واقعی را علال خصوص محبین به چارده معصومین و مؤمنین و مؤمنات و شیعان محمد و آل محمد را همیشه به آفیت امنیت بده، و در خدمت ولایت به آخس مولا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف قرار بده اللهم صل علی محمد و آل محمد, محمد عزیز دا عزیز دا ممنونم متشکرم خب انتهای برنامه وقت زیادی نداریم من چند تا نکته رو فرماشه ذکر میشم سه تا ده 10 دقیقه فرانکاتون ما ارسال کنید انتهای فرانکاتون اگر ایمیل داشتید آدرس ایمیلتون یا تا نوایید ایتون برام که ارسال کنیم شنبه همین هفته که میاد با هر هفته که در شما حضور هستیم ساعت 19.30 21 حاجوهای زیایی حضرت الله جنب زیایی شرکه جوانی مشهد هستن میتونید با همین شما تلفن ها 35 11 یا 25 41 69 25 41 13 23 25 45, این سخط الان یاد کن اگر دوستاشین شمبه میتونید تماس بگیم پاسخاتون رو از جوان خود حضرت استاد بشنو تلفن تلفنی همینطور هنوز خطو داره زنگ می‌خوره من خیلی شرمندم میدونم چند هفته نبودم سوالات شما عزیزان هست بدون پاسخ مونده انشالله که بتونن پاسخور سوالات شما عزیزان باشیم درود ولایت هم میتونید برید متن ها و فایل صوتی و فایل تصویری رو اونجا دانلود و سوالی که نپرسید داشبورد یا اونجا رو اونجا دریافت تنها آرزی که می داشته باشیم این هست که چهارشنبه هفته دیگه به امید این که چهارشنبه هفته دیگه هممون, هممون با هم همه شیانات هم, هم انسان‌های های دنیا نداره زیبای علمه مهدی رو شده باشند. تا بعد تا خدا تا طوام دیگر از شما زیدن خدا نگه دارد خدا رو نگه دا.